داستان سوم انار در حالی که نفس میزدند و بخار دهانشان در آن هوای سرد به اطراف فراکنده می کنار جاده نشستند. جاده سیاه و گرم و مستقیم در دور دستها مخف می و مثل اثر شلاقی بود که بر بدن سفید ای مانده باشد. ککسار، با سفیدی یک دست از آن سوی جاده کشیده می شد و بالا می رفت مرد برفهای یخزده اطراف شلوار جافیش را پاک کرد پاهای یخزدهش را از میان کفش لاستیکی تلیش خوردهش بیرون آورد و انگشتان قرمز و لبوی رنگش را مالید و در درماشت شد. زن قبل از هر چیز پارچه روی صورت کودکش را به کناری زد آهسته گونه های بیرنگش را نوازش کرد و زمزمه کرد رول نازارم دالکه گت بمرهی مرد نرم نرم به سخن گفتن پرداخت چه است، مثل تیغ تیزی که به خیار بزنی می باز هم دیر رسیدیم اتوبوس باید رفته باشد الان ساعت نه است باید زودتر راه میافتادیم میبایستی کمی دست میجنونبانی پاک کردن طویله مگر چقدر وقت میگیره سه تا گوسفند و یک الاغ یا این همه کار نداره و چمان داره میمیره؟ میره؟ رویش را بپوشان جل را محکم به دورش بپیچ راستی آنچه که ننذینو گفته بود انجام دادی؟ ها؟ زن آب دماغش را با گوشه لچک پاک کرد و جواب داد آری، دیشب هم بچه را زیر پالان خواباندم وقتی که آتش اجاق را کشیدم بیرون میان خاکستر گرم جل شره را انداختم و بچه را رویش خواباندم و پالان خر را روی بچه گذاشتم. دور پالان را هم با کهنه ولت و پاره خوب پوشاندم. این شب دوم بود که این کار را کردم. زینو می میگفت: با این کار بچه ات عرق می میکنه و خوب میشه اما خوب نشد. امروز که حالش خیلی بدتر شده. تازه تا کنار جاده تو این سرما آمدیم. الان سه ساعته که تو راه هستیم. بدتر شده. نفسش به زور بالا میاد. زن نگاهی به کودک که آرام نفس میکشید کشید انداخت. کبودی دور چشمش و بینی تیر کشیده نازوکش و لبهای کم خون فرو افتاده بغزناکش دل او را به درد آورد. و این باعث شد که زن اشکش سرازیر شود. حقق حق کنان گفت عزیزکم، رولکم، چه دردی داری؟ کجا درد میکنه بی زبانم، بچه ی بی زبانم؟ مرد که سرما پایش را عذیت میکرد، پنجه را محکم مالید و در حالی که گریه زنش دلش را به درد آورده بود، با لحنی دلداری دهنده بخارهای دهانش را در هوا ول داد و گفت گریه نکن، گریه نکن، شگون نداره، خوب نیست روی بچه گریه نکن لابد پالان را خوب روی بچه نگذاشته یا خاکستر اجاق خیلی گرم نبوده راستی، دعایی را که نن زینو گفته بود، خوب یاد گرفتی؟ لابد آن را درست نخونده ای، ببینم چطور بود زن با دست های زبرش گونه ها را پاک کرد و با لبهای لرزان گفت چرا؟ خوب یاد گرفتم وقتی پالان را گذاشتم روی بچه مطابق گفته ننزین و سوار شعر را اینجوری خواندم. ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس ای نور دل در شم شهدا شهده عباس ای شاه علم بردار این غم که تو میدانی از روی دلم وردار هر دو با هم عشقهایشان را پاک کردند و زن گفت نن زینو گفت که ردخور نداره حتما خوب میشه ولی خوب لابد ما لایقش نبودیم کامیونی با سرعت از جاده گذشت مرد بلند شد ولی دیر شده بود دوباره نشست و به بخارهای روی جاده خیره شد و گفت خب. لابط چیزی بوده که بچهمان خوب نشده اگر نه که ما وقتی بچه بودیم و سرما میخوردیم بیشتر از یک شب نمیکشید که ما را زیر پالان میگذاشتن عرق می کردیم و خوب می شدیم. حالا چطور شده که تو دو شب بچه را زیر پالان گذاشته و خوب نشده رابط درد دیگری داره اما امایبی نداره خدا بزرگه اگر ماشین باشه میبریمش بهداری خوب میشه گریه نکن بده خیلی بده هیچکس تا به حالا؟ با گریه خوب نشده اگر گریه کسی را خوب میکرد الان باید پدر و مادر من زنده باشن تو که نمیدانی چقدر برایشان گریه کردم گریه نکن وقتی با پالان و خاکستر و اوجا خوب نشد با گریه چطور خوب میشه آقه عزیزکم گریه نکن راستی زینن را به کی دادمش دست خالو برار. همش گریه میکرد و میخواست دنبال ما بیاد خالو برار مرد خوب و مهربانییه خدا خیرش بده گفت امروز برا جمع کردن چلو چوب نمیره و میمانه خانه پیش زینل رفت براش یه توله سگ آورد تا بازی بکنه زینل تا طول سگ را دید دیگر با و برار از یادش رفته اتوبوسی از دور پیدا شد مرد با شتاب خود را به لبه جاده رساند دستکان داد ولی اتوبوس کششی صدا کرد و رفت زنجیخ کشید چرا نگه نداشت؟ چرا زودتر دست بلند نکردی؟ مرد برگشت و برفها را لگت کرد و گفت این اتوبوس از آن علاها بود فرم جدیدش نگه نمیداره آخه باید زود برسه به تهران همه مسافراش رئیس روحسان بین راه مسافر سوار نمیکنه. مگر ندیدی چقدر تمیز و خوب بود مثل گوساله تازه به دنیا آمده لیسیده شده بود مثل کشتی کشه میکرد. تو گاراژ کرمانشاه از آنها دیدم. حتی یک مرتبه هم که میخواستن سوار شوند من تا نصفه یکیشان رفتم و برگشتم. به دروغ گفتم عوضی آمدم آن وقت همه به من خندیدند و دو سه تا خانم خوشگل و عزیز دماغشان را گرفتند. اما من دلم میخواست صد تا دماغ میداشتم داشتم، نمیدانی چه بوی خوبی می دادن. نمیدانم که این پدر سگا چه میخورن که این همه بوی خوب میدن. اتوبوسم فکر میکنم برقی بود. چون وقتی یواش یواش پیاده می شدم یا آقایی که موی بلندی داشت به من گفت امو برق نگیردت من هم زود پیاده شدم. خب اگر برق می گرفتم که با ویلا بود الان اینجا نبودم که بچه را ببریم شهر. بچه ادسه کرد و نالید. زن بچه را آرام تکان داد تا بخوابد. از دور اتومبیل زرد رنگی پیدا شد که آرام در جاده می راند. مرد دوباره بلند شد. از اتومبیل صدای گاوی در جاده پیچید مرد رو کرد به زن و گفت پسر اربابه تازه از آمریکا آمده ارباب هر وقت که میخواست از ما مرغانه و تبالانه و گریسانه بگیرد همش میگفت برای پسرمی که در آمریکا درس میخواند این هم پسرش که آمده تفریح شاید حالا ما را با خودش ببره شهر مرد با شتاب خود را به حاشیه جاده رساند یک بوغ گاوی دیگر شنیده شد مرد دست بلند کرد زن قشنگی کنار پسر ارباب نشسته بود و انار دروشکی را مک میزد. مرد تو آن وقت چنان زنی را با پسر ارباب ندیده بود اتومبیل از کنارش گذشت آهسته کرد زن شیشه را پایین کشید و یک انار درشت در حاشیه جاده انداخت ماشین از جا کنده شد و در حالی که هر دو سرنشین قاه قاه می‌خندیدند دور شد مرد دلا شد و انارش را برداشت زنش مواظب او بود مرد همچنان که پشتش به زن و بچهش بود اندکی مردد ماند مثل اینکه فکر می کرد برگشت و در حالی که انار را زیر کتش پنهان کرده بود آرام به سوی زنش آمد زن که به محل برجسته کت شوهرش نگاه می کرد پرسید چه شد؟ چرا نگه نداشتن، حتما کار واجبی داشتن ببین چقدر ما را دوست دارند. انار خودشان را برایمان گذاشتن و رفتن مرد در حالی که آب دهانش را گورت می داد، با تردید گفت انار بود، انار بود، انار به چه بزرگی، سرخ مثل خون می گذاریمش برای شب، آبش را می به بچه تا خوب بشود از آن انارهای شیرینه زن دزدکی به طوری که شوهرش متوجه نشود آب دهانش را گرد داد و چیزی نگفت. ظهر که شد همانجا نان پیچهشان را باز کردند و خوردند. نان با شیری سفت و دوباره به انتظار نشستند اما دیگر دیر شده بود. ناچار از همان راهی که آمده بودند به سوی ده باز گشتند. غروب بود. صدای خشک سک در دهکده سرمازده و ساکت میپیچید و سرد میشد و سرد میشد. مرد انا را رازیر کاههای طویله پنان کرده بود و مشغول کوبیدن چند تا میخ روی قطع چوب پهنی بود از آن چوب هایی که وقتی در جاده میاندازند لاستیک ماشین ها را می ترکاند. زن در اتاق پیرهن چراغ را پاک می کرد. صدای قیج قیج کشیده شدن کهنه به شیشه به گوش می رسید. بچه در گوشه اتاق سر و خوابیده بود تا شب دوباره پالان رویش بگذارند مردی با صدای سرما خورده از آن می گفت قله کرکسار از دور سرخ شده بود گاوی در طبیله می نالید. مرد علاقش را به طبیله کرد و با خود اندیشید چطور به او بگویم کنار فقط پوسته که بادش کردن کابش را مکیدن و برای مسخره کردن ما آنجا گذاشتن و رفتن وقتی که از طبیل بیرون میآمد، با صدای بلند گفت آق نقشینه آتش و اچاق را بکش و بچه را همانجا بخوابان یادت باشه پالان را خوب روش بگذاری دوروبرش را خوب بپوشانی راستی شعر را عوضی نخوانی عزیزکم از دیوار طبیله نیخ دیگری کند و به فکر فروره